گفتگوی ما از داستان خبتخان است خبتخان یکی از مهمترین و بنیادیترین داستانهای کهن است که فردوسی برای ما نگاه داشته است و که این داستان در دوره ساسانیان دستکاری شده ولی میتوان به این دستکاری ها راه برد و آنها را از اصل و اصل داستان را باز ساخت داستان هفتخان آرمانه ایرانی آرمان پرهنگ ایرانی در زندگی. شده. پرهنگ ایرانی پیمودن سرات مستقیم ایده راه راست را به کلی رد می کند و در برابر اون حقکان را میگذارد هر انسانی باید به هفتخان برود هفتخان آزمایش هفتخان شگفتی هفتگان خیرگی تا چشمش یا خرد چشمش بنگرد یا خردش بیندی نگاه کردن و اندیشیدن یک معنا دارد این است که ردوسی در, در جای دیگر میگوید کهن گشته این داستان ها کهن گشته این داستان ها من کنون نو کند روزگار کهن اگر زندگانی بود دیر باز بدین دین خرم بمانم در اگر زندگانی بود دیر باز به دین دین خرم بمانم دراز که یک میوهداری داری بماند من که بارد همین بار او بر چمن در میگوید من با گفتن و سرودن این داستانهای کوهنگرشته چی میخواهم می خواهم روزگار کهن را رو نو کنم این قایت و آمال پردوسی از شاهنام است نو کردن نو کردن تخمه انسان از نوع. یعنی قیامت یعنی رستاخیز من رستاخیز فرهنگ ایران را دنبال می ما امروزه مفهوم و تعبیر دیگری از داستان داریم داستان هایی که نویسندگان ما نوشتن نویسندگان معاصر در ستار نوشتن برای ما مفهوم داستان را تدید آوردند در ذهن ما داستان این معنای میدهد که این نویسندگان نسبتاً معاثر ما و این هفتات هشت سال در دسترس ما قرار دارد در حالی که فردوسی مفهوم دیگری از داستان دارد این دو مفهوم را نباید با هم مشتبه ساخت درد سر ما این است که ما در ذهنمان بدون اینی که آگاهی داشته باشیم نا آگاه بودانه این دو مفهوم را با هم مشتبه می سازیم. یعنی چی؟ یعنی همیشه از دید تعریف و مفهوم و تصویری که از داستان امروز داریم داستان را در شاهنامه نیست به همون معنا میفهمیم و میگیریم و به دین ترتیب ما شاهنامه را غلط میفهمیم ما باید در آغاز ببینیم که فردوسی از داستان چه در نظر دارد فردوسی از داستان چه معنایی در پیش تأسی دارد اغلب روشن فکران امروزه که با ادبیات قرب آشنایی پیدا کردن میپندارند که داستان فرد، پر، داستان فردوسی همون اسطوره است. معمولا برای تمام مقولات ما اینها تعاریف را از خارج میکنند. وقتی دم از فرهنگ میزنیم میروند به کتاب خارجی مراجعه میکنند میبینند تعریف کورتور و کالچر و اینها چیز وقتی برمیگردند میگردند میخوان همین مفهوم را بر ایران انتباه بدن. وقتی دم از عقل میزنیم دم از خرد میزنیم اینها پوری به کتاب خارجی مراجعه میکنند که در اونجا عقل به چه معنای اول شده همون مفهوم عقل را یک راست می و انطباق می بر عدبیات و فرهنگ ما ببینن که خیال می کنن باید خرد درست یا عقل همون باشد که در آجه ها تعریف شدن از همینجا شروع می شد اقلب روشن فکران ما امروزه مفهوم اسطوره را از قربه با ترجمه میتوس میت ترجمه کردن وارد ما کرد مفهوم مفهوم اسطوری آنها غالبا که بدانند چه, چه ندانند متاثر از تعریف آگوست است آگوست فرانسوی که یک متفکر پوزیتیویست بود. او البته در موقعی که اون های اولش را می بدبیترین پایه بینش را بینش اسطوره‌ای می میتولوژیک طبعا استور متضاد با بینش عقلی و علمی و فلسفی عذاب در می آید. با چنین بینش غیر عقلی و غیر علمی و غیر فلسفی, و غیر فلسفی که اسطوره باشه و ناغاه بودانه با داستان فردوسی انتباق داده می شود طبعا هیچ چیزی را نمی شود نو کرد از این گذاشت از خود ما میپرسیم یعنی یک چیز مسخره به نظر ما میرسد چه ضرورتی دارد که روز کوهن را روزگار کهان را که اینقدر غیر عقلی و غیر علمی و خرافی بوده است انسان اثر ناو این است که بهتر است کتاب شاهنامه را دور بیاندازیم و برویم مارکس و هگل و کانت و خیدگر و پست مودرنیست ها و امثال اینها را یا تئوری های اجتماعی و سیاسی دیگر را دنبال بکنیم. نو ساختن خوب این نوها را از خارج تو اواپیما گذاشت و وارد ایران کرد اینها نوواند این ادعای فردوسی یک سخن بیهوده و حرف مفت و است این آقایان هم که مرتب میگویم شاهنامه بزرگ است. از عظمت شاهنامه صحبت می‌کنم. خب چرا بزرگ است؟ آقا در شاهنامه گفته است خرد خیلی مهم مهمه. خرد نیک است. خب آقا این حرف خرد نیک است که به درد نمیخوره این یک بحث گسترده میخواد که خرد چه کارهایی میتواند بکنه همطور که همه میگوند خرد نیکرد اسرام هم عقل را میستاید همه این ادیان به شیبی میستاید ولی اینها به درد بخور نیست این کلیات به درد بخور نیست و از این گذشته، این همه داستان‌های گفت، اینا افسانه است، اینا, اینا سیمور، آخر این مرغ افسانه، ای. اینا با این حرفها که با دنیای امروز، با ماشین و هواپیما و بمب اینها اینا حسو نیست نمی‌کنه. این داستان‌ها نمونه نمی‌کنن. اینا اسطوره اینها اینا افسانه اند، اینا خرافند. حالا بعضی ها که امروز تمام امور کشور رو در دست یا رفقاشون که مشغول رو ساختن اسلام راستین هستن میگویند نه آقا این فرمایشات پیغمبرها که قصص هستند اونها نو و خصص انبیاء نیاز داریم که تو قرآن است این عرب ها به محمد میگفتن که آقا این قصه هایی که تو میگویی چیزی شبیه همون اسطوره هاست اینا که فرق ندارد اینا همون هاست ولی خب اینها جاهل و بدوی بودند و نمیدانستن که قصه که محمد میگوید غیر از اسطوره است. البته این محمد با اساتر اولین تو همه اطوره ها را می پیچد. از همین هم همین ذهنیات اسلامی در مغز روشنفکران فکران ما جا افتاده است و اینی که به ادعای علمی بودن بر ضد اطوره هستند چندان صحت ندارد اینا همون ذهنیات اسلامیشون از اساتر اولین آنها را دشمن اتوره کرده است البته خیال میکنن که این مفهومی که از اسطوره دارن که ضد علمه یک مفهوم صحیح و اونها البته روی ادعای علمی بودن دائمان و نه تنها علمی بلکه بیش از حد علمی بودن همه ابتخار میکنن بعدش وقتی که همه این حرفهای علمی بودن رو میزنن میبینی غیر از چرند هیچی نگفتن حالا آقا اینها غیر اینها خرافه است اینها اسطوره است خب شما خودتون که حالا زیر پای اینا رو جارو کردید خودتون یک فکری به ما بگویید ببینیم عاجزن اینها با این همه دشمنی بر ضد اسطوره ها که البته ندانسته زیراب زیراب شاهنامه و کل فرهنگ ما رو میزنه وقتی که به روشنگری می بدون اینکه بدانند مسئله چیست؟ چنان حمله به عاسرا ها میکنن که نادانسته شاهنامه رو خط بطران روش میکشند. حالا به جای پرداختن به اینکه پراسپ غرب چه تعریفی از اسطوره میکنن و کرده؟ ما اینها را میگذاریم به یک سو و میبینیم که فردوسی خودش چه تعریفی از داستان میکنن و چه منظوری از داستان دارد. این کار کجورم نیست ما حتما نبایستی تعریف های خارجی رو بیاریم به فردوسی به چهانیم ببینیم خود فردوسی از داستان که میگوید چه منظوری دارد البته این کار نیاز به یک بررسی گسترده دارد تا کسی فلسفی داستان را نزد فردوسی روشن کند ولی ما با آوردن چند گواه میتوانیم برخی از این تراش های کریستال این داستان قدیده داستان در شاهنامه مثل کریستال است. بعضی از این تراش ها را نزد فردوسی مشخص دادیم در همین گفتار و با این کم کم مشخصات داستان از دید فردوسی برای ما روشن می شود. در جایی میگوید سزدگر بگویم یکی داستان که باشد خردمند هم داستان سزدگر بگویم یکی داستان که باشد خردمند هم داستان میگوید گوید سزاوار است که من داستانی یعنی اندیشهای بگویم که هر خردمندی هم داستان و معفقان می باشد. داستان اندیشه است که خردمندان با اون توافق میکنند اینجا گیر پیدا کردیم با تعریف اطوری که آقایان از غرب روی دوششان در کول بارشان آوردند و با به قبقب مندازند که خیلی علمی فکر میکنند یا در جای دیگر میگوید یکی داستان گویمر بشنوید همون برک کاری خود بدروید. داستان در اینجا اندیشه ای استوار بر تجربه عمومیست که هر تخمی را که بکاریم هم را میدارم باز اینجا این چه میشود این پردوسی حرف حسابی نمیزن آقا این دا این استوره تعریفی را که ما از آگوستان گرفتیم غیر ممکن است آقای اینجا فردوسی چرت و پرت میگوید پس او داستان رو به تجربی که خرد همگانی در آن توافق دارند میگوید با درد سریجا یا در داستان منو چهر میآید؟ زدم داستان تا زراه خرد سپه بود به گفتار من بنگرد میگوید داستانی آوردم تا از راه خراد برزیدن شاه سپه بود متوجه معنای گفتار من بشه یا اینکه که از رستم داست داستان زدنی می آورد میگوید یکی داستان زد تهمتن بروی که گر می بریزد نریزد بول که گر بری می بریزد نریزد بوی میگوید همتن یک داستانی زد چی داستانی زد گفت که اگر می ریخته و خوار بشود بوی باده که گوهر باده است از باده جدا شدنی نیست این یک تجربه بوده است که همه کردم پس داستان دارد یک تجربه میگوید میگوید آقا این شما گوهر را دور برزید دور ریختن شما حقیقت را دور برزید پشت به حقیقت بخوند هلی خار کردن شما تحقیر کردن شما گوهر حقیقت را از بین نمیبرد، برد گوهر راستی را از بین نمیبرد. برد خب این داستان است خب حالا ما دورو بررسی این رو خراب یا در داستان فرود می آید. فرود پسر سر است می آید که چون این داستان سر به سر بشنوی ببینی سر مایه بدخوی تو این داستان سر به سر بشنبید ببینی سر مایه بدخوی با شنیدن این داستان و درکان چه روح میدهد تو سرچشمه بدخوی را میتوانی پیدا کن در داستان آه ما میریم روانشناسی میخونیم ما میریم فلسفه میخونیم سرچشمه بدخویی خب مب... این در داستان سرچشمه بدخویی رو میشود پیدا کر آقا داستان فردوسی میگه داست... این داستانی که من میگویم راه را برای خردتون میگوشاید که اصل بدخویی را بشناسید این فردوس عجب چرت و پرچه میگوید ما آخا میریم دستبوس و خرب داستان محتوای تجربی است که اندیشیده شده و سپس قبول همه گانه یافته و شهرت و محبوبیت یافته است آخا این چه چرند پرندهایی هایی میگوید میگوید به ایران و توران بر راستان شدان شهر خورم یکی داستان شهر خورم که شهر دموکراسی باشه شهر آزادی باشه میگوید این شهری را که سیاه در همه جا شهرت و محبوبیت ایدایه داستان شدن یک چیزی داستان میشود یعنی همه همگان به ارزش او اعتراف میکنه پس این داستان اندکی فرق دارد با مفهوم اصورهای که ما تو کولهوارمان قرض کردیم به نام علم به روخ همه میکشم همینها بهترین گواه است که داستان داستان اسطوره و خرافهی که فاقد خرد و ضد علمی باشد نیست ببینید همین ها را کمی اگر اندکی شعورمون را به کار میبینیم که این داستان هیچ رابطهای با این تعریف هایی که آقایان از اسطوره و خرافه و اینها میکنن و صبح و شب ما را از تئوریهای اسطوره اصطوره جله میکنن این هیچ رابطه ندارد داستان تجربه های است که خرد عموم با تجربیات خود آن را تایید کردن این رو ما امروز روغت خارجی که قرض بکنیم میگیم دموکراسی. نه آقایزون ایرانی ها که از این پدیدهها ها چیزی سر در در اینا همه جاهل بودن از این پس رویه دیگر داستان تر میتوید حالا ما بس از دیگر همانقدر تا اندازه این تراشه را گفتیم حالا میخوایم به یک رویه دیگرش بپردازیم که اهمیت دارد و اون داستان زدن است ما در همه جا میبینیم صحبت از داستان زدن است شاهنامه همهش مسئله داستان زدن است شاهنامه همه داستانهاش برای ما داستان میزنند یعنی چی؟ زدن جنگ و دعوا و ستیز و کتککاری و چوب و زدن که نیست زدن یک معنایی که ما فراموش کردیم معنای گفت شدن و عشق ورزی هم نزد مولوی این معنا موجود است هم نزد دهاش داستان زدن یعنی چی کوشش کردن برای جفت کردن و پیوند دادن این تجربه سرمشقی این تجربه‌ای که مثل اعلا هست با یک رویداد و کاری که ما در پیش داریم این داستان زدن است اهنامه همی کار را میکند یگ این است که آوردن چنین اندیشهای چنین داستانی برای رایزنی و تصمیم گیری در مورد یک رویدادی خاص خیلی کاراست پزشکان فرزانه گرد آمدند همه یک به یک داستان ها زدن. نهانی به یک جایگرد آمدند عبرکار او داستان ها زدن. اینجا داستان زدن، رایزانی و مشورت و تصمیم گیری با هم و آوردن تجربیاتی که خرد مردم آنها را تذیرفتن در انجمن اون تجربه عمومی در داستان ها با اون رویداد در آن کار داده می شود جفت می شود چگو ایدو این پس چه شاید بودن بباید برای این داستانها زدن برای این کار چگو ایدو این پس چه شاید بودن ما چیکار باید بکنیم ببینید اینجا بباید برای این داستان خاطتا. ببینید اینجا با مسئله اسطوره که ما کردیم هیچ رابطه ندارد یادآوردن آوردن این تجربه های مایعی و بنیادی جامعه یا یک پهلوان و داستان زدن آنها می میتواند منقلب سازد نه تنها برای مشورت کردن آدم میآورد بلکه میتواند بونه انسان را تکان بدهد این مفهومی که فردوسی دارد از داستان داستان قصه عموکرسم نیست که آدم موقع خواب میشنود نه ببینید در میگه بدین داستان دور و باورم همین بدین داستان دور و باورم البته دور معنای تخم داشته به سنگندرون لاله کارم همین من با داستان از سنگ لاله و گر بیرون میآورم یعنی یک کار محال میکنم داستان میتواند منقلب بکنم فردوسی یقین دارد که این گونه داستان‌ها در شاهنامه نیروی نوآفرینی، نیروی بیرارساننده، نیروی رستاخیزنده دارند. از این روح است که شاهنامه را سروده است. این شعری که همه می‌آورند ادبیاتی ها عجم زنده کردم بدین پارسی مقصودش این است که من با این داستان های پارسی عجم را زنده کردم عجم این معنایی که به امیده هند معنای دوم است عجم با علیه که معنای اصلی را دارد یعنی نیستان یعنی خانه سیمور ایران عجم بود خانه سیمور پس ببینید عجب. یعنی ایران را من زنده کردم با این دوستان مقصود نیست که زبان پارچی رو نگه داشتم این خیلی مفهوم تنگ و حقیر و محدودیست فردوسی خیلی بیشتر از این کرده است که همه میپندارن محتوای شاهنامه رستاخی زنده آفریننده قیامت سازنده هست از این روز هست که می اوید که گشته این داستان ها زمن کنون نو کند روزگار که اگر بحث و بررسی و شناخت از شاهنامه راست نو کننده آفریننده پرشگرد کننده پرشکرد کردار نباشد ساز نباشد ولو در بهترین دانشگاه و از عالمترین استادان و به علمیترین شیوه شده باشد چیزی جز چرندیات و راتالت نیست. در دو شعر بعد که اول خواندم اگر زندگانی بود دیر باز بدین دین خورم بمانم دراز که یک میوهداری بماند زمن خوب اینجا توجه بفرمایید. شاهنامه را او درختی میداند که تخمش را میعفشاند که بارد این داستان های شاهنامه ابشاننده تخم سیمرغ هستند. این درختی که تخم ابشانن این درخت و تخمک است درخت سییممر هست خاکستر سمندر که خاکستر را معمولا سعی میکنند. از ازخان تحریب کنند، خاک، خاکیه، یعنی خاک خاکینه یعنی تخم. همون کلمه هاگ هست. هاگ یعنی خوچه گندم. یعنی تخم قرنده. استر استره یعنی پراکندن. افشاندن. خاک اینی که میگن سیمرغ از خاکسترش استرش برمیخیده. از خاید. یعنی از تخماشه. اون خرافه نتیجه این است که ما این واجه ها را درست نمیفهمیم رستاخیز یا نوشوی هنگامیست که رستاخیز در تفکر ایرانی چی بوده؟ رستاخیز به قیامت به معنای اسلامی و مسیحیت و اینا اصلا کار نداشتن یا به مفهوم زردش رستاخیز نوشبی و هنگامی است که هر تخمی انسان تخمه مر تخمه انسان تخمه. هر تخمی خودش بروید و روشن شد رستم را و تخمه تخمی که میروید تخمی که روشن میشود. اگر دقت شود میبینید سبزی برابره با روشن قرار داده میشه هر کسی خودش تخم روینده یا رستن بشه موقع هر ایرانی خودش رستن بشه این توخ تخم مردم مراتقم تخم در هر کسی میروید شاید رستم و هفتخان تاریکی را میپیماید تا بروید و روشن شود. آرمان فرهنگ ایران پیمودن سرات مستقیم نیست که روشن و همبار در برابر ما نهاده شده ایرانینی میباید اهتمام سرات مستقیم آرمان پرنگ ایران را لاله زر رستن میگوید این است که انسان مردم تخمی است که از خودش باید سبد روشن بشه سبز شدن روشن شدن شما دقت کنید ببینید چه زیبا سبز شدن شاد و خرم شدن روشن شدن است که روشنگری تو مغزم های چیز مقدار اکار خشک و اه... کشنده و خست کننده جابه نه روشنی در برنگ ایران با سبز شدن با خرم شدن سرکارد با شاداب شدن ترکاتی روشنگری یعنی جشم یعنی شادمانی فکری رستاخی زنده است که ما را نه تنها چشم ما را روشن کنه بلکه ما را شاداب بکنه قیامت در فرهنگ ایرانی ترس و عذاب اینا ندارد قیامت همیشه مقوم باها رو دارد این محبوم قیامت اسلامی و زردوشتگری در فرهنگ ایران وجود نداشته است. خودش باید هر انسانی به هفتخان پرسش و آزمایش و خیرگی و شگفتی برود تا چشم خودش باز شود یعنی چی؟ یعنی خردش اندیشنده بشه چشم ایرانی که نگاه میاندازد چشم این همانی با خرد داشت. نگاه چشم با چشم خودش اینی که در ارپان مسئله چشم و نگاه بصیرت اهمیت دارد چونکه که چشم در فرهنگ ایران با خرد این همانی داشته با چشم خود دیدن یعنی با خرد خود اندیشیدن تا خودش انسان روبرو با دیو سیفید شد با پدیده‌های آمیخته و دورنگ روبرو شد همه پدیده‌ها در خودشان پیچیده و آمیخته هستند خیر و شر و زیبایی و زشتی و زندگی و ضد زندگی اینا همه در هر پدیده ای روی دادی با هم آمیخته ما وقتی بیدار شدیم وقتی قیامت در ما روی داد، وقتی پرشکرد پیدا کردیم وقتی چشمی که ما را شاداب می کند او شد اون موقع که خود ما زندگی را از زندگی در هر چیزی تشخیص میده. ببینید این اندیشه کاملا متفاوت با اندیشه زردو شد. فرهنگ ایران بر جِد رفتن به سرات مستقیم است و از خدا نمیخواهد که به راه را صداयत کرده شود چرا چرا نمیخواد چون خدا یا چیمور یا ارضه تخم در درون اوست که باید در تاریکی های جسوجوب و آدمایش بروید و پیدایش جوید در شاهنامه می بینید ارته یعنی هوچتر، یعنی دارای است. تقمه های زاینده به معناش یعنی زاینده و آفریننده خدا مجموعه تقمه های انسان ها مجموعه تقمه های آفریننده و زاینده و رستاخل جنده است. چشم انسان موقعی خورشید می شود که تخمت خدا در او سبز بشود و بگو صرعت و روشن شود. انسان با خرد خدا میاندیشد، با چشم خدا میبیند. این چشم چشم خرسیدگون است. کوهن گشته این داستان ها من کوهن گشته این داستان ها من کنون نو کند روزگار کوهن. کنون نو کند روزگار تو کهن اگر زندگانی بود دیر باز به دین دین خرم بمانم دراز که یک میوهداری بماند ز من که بارد همی بار او برچمند شاهنامه درخت بارآور و پر تخمه او چیتره ارتا یا سیمور چنین درختی بود که توخایت را بر چمن انسانیت میبشن تا قیامت بشن تا بخار بشن تا جشن نوشوی بیاید.